بکشای درم که در گشاینده توی، بین مای رهم که رهن تویی توی، من دست به هیچ دست گیری ندهم، کیشان همه فانیند و پاینده توی با من تو هر چه گویی از کین گویی، بیوسته مرا ملحد و بیدین گویی، من خود مقرم بر چه هستم لیکن، انصاف بده تو را رسد کین گویی با درد به ساز تا دبایی یابی و رنج منال تا شفایی یابی می باش به وقت بینبایی شاکر، تا عقبت و عمر نبایی آبی. تنگیمه ی خواهم و دیوانی، صد رمقی باید و نست نانی، وانگه منو تو نشسته در ویرانی، خوشتر با از مملکت سلطانی.